دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الله جل جل هو همه ما شما عقیده مطابق قرآن و سنت نصیب بکنه عقیده خود از قرآن از مشان بگیریم کلام الله جل جلاله کلامی که اگر انسان باو چنگ بزنه و الله جل جلاله گفته که و بحبل الله جمیعا با کلام الله که قرآن از مشان از چنگ بزنین عقیده تان ازو بگیرین دوستان عزیز د برنامه که برنامه نوزدهمی است اگر فکرتان باشه در برنامه قبلی ما شما توحید اولویت تقسیم کردیم به سه بخش تقسیم کردیم توحید اولویت به عبادت های قلبی و عبادت های بدنی و طاعت در قانون و احکام الله جلاله جلاله بحث کردیم سر. بخش اولش که توحید در چی بود؟ در عبادت قلبی بود و سر قلب مکس کردیم و پامیدیم که قلب چقدر ارزش داره در زندگی یک مسلمان اول خود توحید در عبادت قلبی توحید در عبادت قلبی هم چند قسم تقسیم میشه تقریبا سه قسم ای هم تقسیم میشه توحید در عبادت قلبی متوجه باشین توحید در کجا در عبادات قلبی چند قسم است سه قسم است توحید در عبادات قلبی سه قسم است اولش توحید محبت است دومش توحید در خوف و ترس است و سومش توحید در توکل است ال وقتی که ما شما الله جل جلوهوره تید توحید الله جل جلوهو ره عملا تطبیق میکنیم و توحید در قلب خود میخوهیم که موحد باشیم اول قسم ازید چی هست؟ محبت است. توحید در محبت الله جل جل عجب است. ببینیم قلب انسان یا محبت الله جل جل را می داشته باشه و یا محبت غیر الله را می داشته باشه. پس وقتی که ما در قلب خود محبت الله جل جل را داشته باشیم اینجا هست که ما یک انسان موحد هستیم. اصلا باید محبته بفامیم که محبت چی هست دوستی چی هست محبت دوستی چی هست خب انال وقتی که گفتیم محبت باید محبته بفامیم که محبت چیست محبت دو قسم است یکی محبت خاص است و یکی محبت مشترک محبت خاص چیست و محبت مشترک چیست محبت خاص محبت عبادت و بندگی میگن محبت خاص محبت عبادت بندگی هست که شامل خوشو، اطاعت و برتری دادن کسی که او را تو دوست داری بر همه مخلوقات است و این محبت مخصوص الله جل جل الله جل جل مستحق محبت خاص است. پس ما خوشو و توازو و اطاعت بگی میکنیم به الله جل جله میکنیم ای اطاعت ما و ای عبادت ما اساسش چی چیست؟ همین محبت خاص است. انسان های مسلمان خاص عبادت به الله جل جل می کنند و وقتی که عبادت به الله جل جل میکنند، محبتشان هم با کی است؟ به الله جل جل و ای محبت خاص است. و دیگه چی چیست؟ محبت مشترک است. ببینین، محبت دو قسم شد یکی محبت خاص شد و دیگه قسمش محبت چی شد محبت مشترک شد دوستان عزیز ما و شما سر محبت گپ زدیم که محبت هم شامل می شبا عبادت های قلبی محبت هم شامل می شه به عبادت های قلبی آله ببین که ما و شما اول امی خود محبت بشناسیم محبت خودش دوستی هست. لکن محبت که قلبا انسان میکنه دو قسم است با یک یکی محبت است که اینو محبت خاص میگن و یکی هم محبت مشترک میگن محبت خاص و محبت مشترک محبت خاص کدام محبت است دوستان عزیز اگر قلم پیشتان باشه و اگر کتاب پیشتان باشه و این چیزها رو یادداشت بگیرین و بعد ازی که از برنامه خلاص شدین سازی کم فکر بکنید باز مسئله آخری در بسیار خوب میفهمم و اگر شما امید کتابی را که ما از روش درس میکنیم با ان آمادی آماده چاپ میسازد میشه اگر از این استفاده کنید هم خوب میشه لکن اگر قلم و کتاب چاپشتران باشه و یا را نوشته بکنین یا داشت بگیرید برایتان بسیار مفید است و بسیار ضروری است برای یک مسلمان پس یکی محبت خاص است و یکی محبت مشترک محبت خاص محبت بندگی است. که ای خاص بر کی است بر الله جل جلو است اطاعت به الله میکنیم کنیم به اساس محبت سجده به الله می کنیم اساس محبت ما الله جله جلوه را دوست داریم برای اطاعت می کنیم فرمانبرداری می کنیم بندگی می کنیم ای چی است محبت بندگی هست و دیگه محبت مشترک است محبت مشترک چی هست که احیانا انسان به همراه مخلوقات هم محبت می داشته باشد. لیکن محبت مشترکی که بر مخلوقات انسان داره این محبت ها فرق میکنن. احیان این محبت محبت طبیعی هست این محبت مشترک احیان محبت طبیعی است. محبت طبیعی است. مثلا من تشنه هستم به یک گلاس آب یا یک گلاس چا... چای بسیار محبت دارم که اگر یعنی یک گلاس آب میبود یا یک گلاس چای می میبود چقدر خوب بود پس اینو چی میگن؟ پس خود محبت محبت م, م طبیعی گرسنا گرسنه با غیظا محبت این محبت طبیعی است. از این خاطر ای در محبت خاص شامل نیست، این محبت مشترک میگن. دیگر محبت ش... شفقت و مهربانی است. محبت شفقت و مهربانی چی است؟ مثلا من اولاد خود دوست دارم. اولاد خود دوست دارم ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دوست داشت. محمد صلی الله علیه و salam خود ابراهیم دوست داشت. حضرت علی رضی الله تعالی و بچی خود حسن و بچه دیگیش حسین رضی الله عنہ دوست داشت. یا محبت شفقت است. محبت هست که این مشترک است. هر کسی این محبت دوستیده داره. و قسم سومش محبت چی است؟ محبت امس و الفت است. ما وقت که که یک کسی نشست و برخواست میکنیم با هم زندگی میکنیم با هم در یک دفتر کار میکنیم با هم در یک جای هستیم پس بین ما انس و الفت و محبت ایجاد میشن با خانم خود محبت داریم با برادرهای خود محبت داریم با اقارب خود محبت داریم با همکارای خود محبت داریم شاگرد با استاد خود محبت داره من مسلمان شما را کلتان دوست دارم این محبت است شما را دوست دارین این محبت است پس این محبت محبت چی است الفت است پس محبت انس و الفت یا محبت شفقت یا محبت طبیعی این محبت هایی است که انسان ایر باقی می داشته باشند با مخلوقات می داشته باشند این محبت ها مانعی مشکلی نداره یعنی نه مانع داره محبت طبیعی انسان هر کسی همیشه تشنه برای آب محبت داره گرسنه به غذا محبت داره والدین و اورادای خود محبت دارن دوستای خود انسان دوست داره و با امروشان محبت دارن پس ایر محبت مشترک میگه که این مخصوص انسان ها این محبت ها عادی هست و از دیدگاه شریعت اسلامی کدام مشکل نداره لکن محبت خاص محبت الله جله جلوه است که نباید این محبت های مشترک با محبت الله جله جلوه یکسان فکر شودم یکسان عقیده شود و یا محبت خاص خود ما و غیر الله بتیم اینال محبت الله جله جل جلوه چه قدر است؟ که یک انسان مسلمان ابراهیم علیه السلام اسمایل علیه السلام دوست داشت نداشت داشت. لیکن وقتی که محبت الله در مقابلش قرار گرفت خاص که محبت اولاد خدا قطع بکنه و امی اولاد خدا خاطر رضایت الله جلاله جل جل جل قربانی بکنه پس محبت حقیقی محبت الله جلاله جل است جل جل. این محبت های دیگه محبت های مشترک یا محبت مجازی هست محبت حقیقی که محبت بخ... بخاطر از این محبت عبادت و طاعت و بندگی میشن این مخصوص الله جله جلاله است از این خاطر محبت با مخلوق وقتی که داریم مشکل نداره. به که این محبت ها جای محبت خالقه نگیره و وقتی که در بینشان دو محبت میخوایم موازنه بکنیم باید محبت الله جلاله از دیگه محبت ها کده بسیار قوی باشه کسی که کافر میشن و بیدین میشن و گمرا میشن. چرا گمرا میشن؟ ایت قرآن چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان و بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبون اهم که الله و آمنوا اشد حب لله و من الناس و بعضی از مردما ها ببینیم صفت کسانی که محبت خالقه بر مخلوق میتن از دایره توحید خارج میشن کدام مردم هستن؟ و الناس و بعضی از مردم ها من کسانی هستند که اتخذ میگیرند بعضی از مردم ها چی میگن من دون الله اندان و غیر از الله شریک میگیرند به الله جل جلاله باز امی شرکاره که اگر بت است اگر قبر است اگر پیغمبر است اگر ملائکه هست، اگر جن است اگر سنگ است اگر چوب است یا شریک ساختن به الله جله جلاله یحبونهم که حب الله می خطر از کجا آمد که به امرای از اینا محبت میکنن مثل محبت الله ما پیغمبر دوست داریم لاکن به امراه از او محبت مشترک داریم محبت دوستی احترام سمیمیت شفقت انس و الفت منای یک استاد بزرگ خود با پیغمبر صل هلم محبت داریم لاکن محبت خاصی که محبت بندگی هست و امرای پیغمبر نداریم چرا چون محبت بندگی و محبت خضو و محبت خوشو و محبتی که سر سجده برش باریم و برای پیغمبر نمیمانیم از این خاطر ما موحد هستیم الحمدلله اما کسی که مثلا میره به مجسمه عیسی علیه السلام سجده میکنه محبتی رو که باید به با الله بته به عیسی علیه السلام میده حس اینجا چی شد؟ یا یک کس میره با قبر یک والی الله سجده میکنه محبت الله را با کی دار؟ با ولی الله دار. و من الناسی و بعضی از مردمان می‌یاخته‌د که می‌گیرند از دون الله انداد که یک کس دیگر شریک با الله می‌گیرد. یحبوهم با مرایش محبت میکنه. چه قسم محبت میکنه؟ محبتی که که حب الله محبت با یا مثل محبتی که باید با الله جللا جلیهوش جل با مرایی این قسم محبت میکنه. سختی و خطر اینجا هست که محبت خاص الله را برای بر مخلوق بده اما اگر محبت مخلوقه را برای مخلوق بده بر مثل محبت شفقت، محبت طبیعی، محبت انس و الفت وحق مخلوق است میتونه انسان محبت اما محبت خاصی که بخصوص الله جل جلوه است او را اگر برای مخلوق بده باز اینجا برای ما چی پیدا میشه؟ شرک پیدا میشه چرا؟ بخاطر خاطر که اگر محبت افراتی بر مخلوق صورت گرفت باز اینجا شرک ایجاد میشه و مخلوق به ایواز خالق در محبت با او یک میشه خب آل در قسمت محبت یک دو نقطه دیگه هم است که ایره باید بفامیم و سرش خوب فکر بکنیم اول ای که من میخواییم که الله جل جل دوستیش حاصل بکنم چه قسم محبت الله جل جلاله بر ما حاصل میشه که من محبت خاص از اون با کس دیگه نتم این سوال بسیار مهم است بله چطور من میتونم محبت الله را حاصل بکنم الله جل جلو چی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اگه قرآن بر ما راهنمایی میکنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله جل جلاله كلمه قل بگو اي محمد صلى الله عليه وسلم بارزي مسلمانه ان كنتم تحبون الله اگر الله دوست دارن فاتبعوني باید باي از نمطابيت بك پیغمبر برما چی آورده؟ قرآن آورده و سنت صحیحه را این کنتم تحبون الله اگر شما محبت با الله دارین الله حقیقتا دوز دارین چی باید بکنین؟ فتطبیعونی پس مطابعت مره بس ما را بکنین پس ما میخواییم که محبت خود با الله ثابت بکنیم اول محبت خود خاص به الله بگردانیم چطور میتونیم محبت خدا خاص به الله, خدا خدا الله جل جلو بگردانیم؟ وقتی که ما حقیقتاً پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم پیروی رسول الله بر ما چی را گذاشته؟ قرآن رو گذاشته به قرآن رجوع بکنیم و رسول الله بر ما احادیث صحیحه را بیان کرده ما باید احادیث صحیحه را تحقیق بکنیم و پیدا بکنیم و مطابق قرآن و احادیث عقیده خدا، عمل خدا و اخلاق خدا آراسته بسازیم و معاملات خدا. پس ما میخوایم محبت الله را حاصل بکنیم. محبت الله بدون از مطابعت پیغمبر صلوم الله علیه و سلام نمیشه. پیغمبر سم چه قسم دعا کرده؟ از پیغمبر یاد بگیریم. پیغمبر بکی سجده کرده؟ باید از پیغمبر یاد بگیریم. پیغمبر برای کی نظر کرده؟ باید از پیغمبر یاد بگیریم. پیغمبر برای کی رکو سجده کرده؟ در مقابل کی حیوان زبحه کرده و چی قسم گفته زبحه بکنین ده مقابل که زبحه نکنین با کی نظر نگیرین برای کی بگیرین چی را عبادت بکنین چی عبادت نکنین کدام چیزا سبب شرک شما میشن پس ایره باید از قرآن و سنت ما شما بگیریم اگر محبت الله را حقیقتا این کنتم تحبون الله قول بگو برشان این کنتم اگر شما با الله محبت دارین پس مطابعت یعنی اینجا گفته که اگر که گفت یعنی که مطابعت رسول الله صلی الله علیه و نبود محبت الله حاصل نمیشه و اگر کسی بدون مطابعت رسول الله صلی الله علیه و بدون گرفتن عقیده از قرآن و سنت اگر میخواه که از دیگه جای عقیده خدا بگیره و بگه که ما به الله محبت داریم ای دروغ میگه و محبت با الله و با رسولش نداشته خب سوال دیگه میشه که ما الله جل دوست دارم و من میخوایم که الله جل جلوهو مرا دوست داشته باشه والله سوال بسیار خوب است ما خودم الله جل رو دا دوست دارم و سوال میکنم که تو میشه چی کاری بکنم که الله جل, جل جلوهو مرا دوست داشته باشه یا سبحان الله چه خوب سوال چی باید بکنیم؟ این آیت شریف برای ما جواب میده قل برشان بگو ای رسول الله صلی و این كنتم تحبون الله اگر شما الله را دوست دارین فتبعونی بس مطابعت از ما بکنین یحببکم الله یا سبحان الله الله شما را باز دوست می داشته باشه یعنی اگر طاعت و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم شما باز الله جل جلاله ام محبت ما با الله مستحکم می و وقتی که را دوست داشتیم از طریق اطاعت و پیروی رسول اللہ صلی اللہ و الله صلی الله علیه و سلام الله باز الله شما را دوست می داشته باشد یعنی برادرای عزیز خواهرای محترم و موحد وقتی که ما مطابق قرآن و سنت عقیده خدا آراسته بسازیم و مطابق قرآن و مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم با الله جل جلاله محبت بکنیم نه محبت افراتی که مخلوق شان عظمت خالق برسانیم و نه محبت تفریتی که مخلوق خالق محبت تفریتی که خالق محبتش کم بسازیم و محبت ازور با مخلوق بده نه افراط و نه تفریت پس این صورت است که واقعا محبت الله جل جله اصل میشه نبا افراد و نبا تفرید در محبت افراد و تفرید چه قسم پیدا میشه؟ همین قسم افراد و تفرید پیدا میشه که احیانا یک کسی عبادت خالقه به اساس محبتی که به مخلوق داره به مخلوق میکنه افراد در محبت چه وقت میشه؟ سرات مستقیم از راه راست است از این راه راست چرا ای طرف و ای طرف منحرف میشه مردم؟ بعضی کسا افراد میکنن محبت مخلوق بسیار زیاد در قلب خود جای میتن به اندازه که محبت خاص الله را برای از مخلوق میدن و اینجا افراد پیدا شد مخلوق به مقام خالق رسانده شد شرک ایجاد شد و انسان قلباً از راه مستقیم قلبش منحرف شد و احیان تفرید صورت میگره که در مقابل خالق بسیار بی تفاوتی بسیار بی بسیار عادی و ای هم نه بلکه انسان مسلمان باید محبتی والذین آمَنُوا سرکنین قرآن چی میگه والذین آمَنُوا کسانه که ایمان دارن چه قسم محبت با الله دارن؟ اشد و حباً عشد و لله عشد بسیار شدید و قوی محبت با کی دارن؟ با الله جل جلو دارن این محبت قویی که انسان مؤمن با پروردگار خود داره این محبت قوی با الله ای این به که می غیر که غیر الله قلب خدا هیچ وقت قوی محبت به او نداشته باشه. با غذا محبت داریم؟ داریم. با آب محبت داریم؟ بلی داریم. لکن وقتی که الله بر ما گفت که غذا را نخو آب ننوش ده مبارک رمضان بس منتظر میمانیم میمانیم میمانیم میمانیم می تا که الله بر ما اجازه بده ما مغرب بکنه میگیریم پس روزه دار محبت خدا با کی ما محبت چی دارم محبت طبیعی دارم با غذا و با خوراک اعضای بدن من به خوراک با غذا نیاز دارن لكن اشد حبا لله اینجا چه قسم تطبیق میشه که وقتی که الله بر ما گفت کی. محبت داری به امر ازین بله لكن امر ما حسرو زبیگی تشنگی بسیار سخت است و آوان بشریت مانده گیز نمی نوشی تو روزدار چی میشی با اساس محبتی که با الله داری باز الله باداش روزدار چرا میده که که بطنهایی به خاطر خالصا لله تعالی آب نمی نوشی و غذا هم بشریت سبسیار دوستشان داری چرا محبت الله که در مقابل این محبت قرار کلش کل چیز بین می برد. محبت شفقت با اولاد ابراهیم علیه السلام بسیار محبت قوی داشت با أولاد خد با اسماعي لسهم لكن وقت كي شفاقات قوي و محبتي إذيكي با در مقابل محبتي الله قرار كيف الله قف بچي تزعب حكو آمد وبرش قف كي بچي ترزعب حمي كنن بخاطر إذيكي الله برامامر کرده محبتي خدا صابت کرد محبت با دوستا و أقارب داريم لکن روزی که صحابه کرام دیدن که ما پدرم از در مقابل واقعی شده پدر مشرک برادر مشرک ما پدر اون دوست دارم برادر مام دوست دارم لکن اردوشون کافر و بدون و مشرک هستند دشمنای الله هستند بچه و همین برادر میخیزه در مقابل پدر و برادر و اولاد مشرک خود استاد میشه چرا این مسلمان آماده میشه که پدر مشرک خود و برادر مشرک خود و اولاد مشرک خوده از از زنا برای و احیانا در مقابل زنها جهاد بکنه به خاطر ازی که وقت محبت اصلی و حقیقی که محبت با خالق است اید قلب انسان چه گرفت باز دگه محبت ها اگر چی وجود داره لکن مجازی است در وقتی که با این محبت تکر کرد از بین میبره و با اون محبت نمیکنه پس مسلمان ها چی دارن والذین آمنوا أشد حب لله كسانك إيمان دارن باس إنا محبات بسيار قبي دارن تا دا آية شريفة جاتش ميجا قل أتي الله قل أتي الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل بك إي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي الله إطاعت الله بك دي. أول إطاعة الله عز. قرآن إطاعت بك أحكام قرآن صلى التدبيق بكو والرسول وإطاعته الرسول بكو كون رسول قرآن والسنة السححة ودستور الله لباره موتوا ورده رسول الله بس إطاعته الله بكو بازه رسول صلى الله عليه وسلم فإن تولو أغر إنا روغشتان فإن الله لا يحب الكافرين پس یقین داشته باش یقینن که الله کافرها را دوست نداره پس کسی که اطاعت از الله و رسولش نمیکنه و محبت غیر الله را نسبت به محبت الله و رسولش بیشتر میدنه و یا در محبت مخلوق اقدر افراد میکنه که او را با محبت الله شریک میسازن و در وقت مشکلات و دردها به یه قلب پر از محبتش نام الله را یاد بکنن نام مخلوق را یاد میکنه پس فا الله لا يحب الكافرين الله جل جلاله کافران را دوست نداره پس ایست خلاصه ای که یکی محبت الله است و یکی محبت غیر الله است محبت الله محبت خاص است محبت حقیقی است و محبت غیر الله محبت مجازی و محبت مشترک است پس مسلمان ها همیشه محبت قوی با الله دارن و مطابق محبتی که با الله جل جلاله دارن زندگی خدا 24 ساعت با محبت الله جل جلاله جل سپری میکنن و با محبت الله اطاعت میکنن و عبادت میکنن آن کس که تو را شناخت جان را چی کند فرزند و عیال و خانمان را چی کند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چی کند دوستان عزیز از اینکه وقت برنامه پوره شنم شما را به خالق متعال مزبارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات